حکایت یکی از بندگان امرلیز گریخته بود. کسان در عقبش برفتند و باز آوردند. وزیر را با وی بود و اشارت به کشتن فرمود تا دیگر بندگان چنین فیر روا ندارند. بنده پیش امر سر بر زمین نهاد و گفت هر چه رود بر سرم چون توپسندی رواست. بنده چه دعوی کند حکم خداوند راست. اما به موجب آنکه آن که پرورده نعمت این خاندانم، نخواهم که در قیامت به خون من گرفتار آیی. اجازت فرمای تا وزیر را بکشم آنگه به قصاص او بفرمای خون مرا ریختن تا به حق کشته باشی. ملک را خنده گرفت. وزیر را گفت چه مسلحت میبینی؟ گفت ای خداوند جهان از بهر خدای این شوخ دیده را به صدقات گور پدر آزاد کن تا مرا در بلایی نیب کند. گناه از من است و قول حکما معتبر که گفتند، چو کردی با کلوخنداز پیکار، سر خود را به نادانی شکستی، چو تیر انداختی بر روی دشمن چنین دان کندراماجش نشستی.